حکایت درویشی را دیدم سر بر آستان کعبه همی مالید و میگفت یا قفور، یا رحیم تو دانی که از ظلوم جهول چه آید، عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت ازتظهار، آسیان از گناه توبه بکنند عارفان از عبادت استقفار آبدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای به بضاعت من بنده امید آوردم نه طاعت و به دریوزه آمدهام نه به تجارت اثنع بیما انت اهله بر در به سائلی دیدم که همی گفت و میگرستی خش من نگویم که طاعتم بپذیر قلم عف بر گناهم کش